ندارها که تقدیمتون میکنیم بشنوید رادیو فیلم ندارها نویسنده علی رضا طالب زاده بازیگران: پشمان بازقی در نقش علی، هانیه توسلی در نقش مهری، مهزن تنابنده در نقش محمود، مریم گوبانی در نقش آلیه، مادر مهری، آهنگساز ستار اورکی، تهیه کننده و کارگردان محمد رضا عرب در حال نوشتنه نوشتن روی کاغذ هایی که لای یه پوشه هستن نور ضعیفی تنها یه قسمتی از برگه ها رو روشن کرده اون می گفت خدا به هر کسی این فرصت و لیاق رو نمیده که بتونه در حق دیگران خوبی کنه می گفتفت اشتباه ما از همین جا شروع شد از اینکه وسوسه شدیم این فرصت رو زور از خدا بگیریم میدونی شلوغ تو شهر تهران انبوه موتورسیکلت ها که لای ماشین ها وراژ میدن علی هم با یه مسافر لا این جمعیت مشغول کار چرا یه خلاص. چین بوده. شما, قدمی با شما حالا علی روحانی رو سوار موتورش کرد. جواب. علی میگه هر کو این چی میزنه. میگه. حالا خود وکیلش دهن علی شما روحانی چیزی میگی؟ نه یه چیزی بگم، گرد رو نرو بوشتو کنه، گرد به شما رو درست بگم، دیدم شد، فوقت رو با رو جهزه مثلا من از سولالیس و استاکیر تاکرسی علی، خیابن، خیابن، خیابن، عوض برم به نظرم اونجون که استاکیر رو با خودش میبره، آینش نیم آقایی، نگم نکنه جایی این تعمیل با اون تعمیل درفتن، باید ویندوز تو برو بالاخره علی موتوشش جرایی یه شرکت نمایندگی پارک میکن کلاه رو بر رو و از پله های دفتر نمایندگی میره پایین بابا پرو فاکن بابا ماشینم فروقتتونمثلن واسه بابا قبل بخرم چند تا را رادیو ضبط گوشه دفتر ولو شده حالا کی چ که ما رو میدی؟ثر اذیت نکن پول لازمم افتادم دنبال نمایندگی صوت و تاثیر ششبادو میاد علی دو تا رو بر میده جمع کردم همگاه بابا رو بعد میخوام پشتم فقط بدون کلفته باشه. نذرینش چیه؟ یه اونم تسمیک براش کرده گفتم این هفته دیگه ردیفش میکنی هیچ چی باشه گده بابام بودم. ماجا تو خیابونام رفتم دوال مسافرکشی ها. فقط میز تمرینم خودم راه بندازم دیگه. خدا رو حفظ کنه آقا. قرار دیدن جای مغازه رو انداز به اندازه کنن اوکی نمیدن دیگه بدن. زنگ زدن دو دیگه. خدا حفظتون. به حال میاد. ما چک محمد هست. علی جلوی سوپری محله وایس. سلام سفا سلام علی آقا شیشتر از اون دوزردار شد میشه زنی چادری از کنار علی رد میشه و زیرچشمی نگاهی به علی میندازه محمود بالای پشت بوم دنبال یک کفتر سفید توی حیات صاحب خونه مهری یک کفیو کرده تا اساسیه مهری و مادرشو بریزن کفاقی محمود از پشت بوم متوجه داستان میشه چونه این یکی دیگه تو مراامند نیست. یکی دیگه جایی آخریش بهت بودینه. برو. منظور با زبون بی زبونی به صاحب خونه اعتراض کنه. هی، دیگه ببین. اون چی میگه دیگه؟ وا دیگه دیدی ب. برو. رنده تون صدای یکی از ها یه ظرف مسیرو رو چرا خوشکاری می‌کنه؟ چرخر دست از خود راست از خونه میاد بیرون. آخرش میون آبادان است علی چلو یه دختر کش لو وایست. اوله بود چه ششنگه. علی کی یلا سوره <تصفح> مادر طاهر <فاحت> محمود <محموع> جلوی اونو میگی تو چه معنی دوباره به دامن بده بعد من آقای بریش چی به من نگم بچه من الان میزنه صابونه اخا شما شما نه دست روزم ولن می آید بخیلن افلار بجاش فساتف نمی آها من محمود میاد به حیات مهریو و کفترشو پر میده و میره تو شکم صاحب خونه و مزدورش باز یا چی چی میگه؟ بابا میگه باز مستجره بهتر گیره بابا میگه باز مستجره بهتر گیره بابا میگه به می. با این بیکسا خیلق خیلق میگه اون چهار طبقه سر گذر با خونه کرجی بس نیست. تو رسنه نخواه بری طبقه تا بگیرم من فقط دارم دیماجی میکنم میخوام نکنی اصلا شما دوتا چکار به این بی کسا داری؟ همین بگو لبا چیزی بی ماست محبوب به ساکونه حمله میکنه و اونو میگیره رو دوشش تا بزنه تشتنه بایی لد بینا بینا بینا بایی بایی خونه بایی لد بایی لد هرچی تو بایی لد بایی لد بگن تو چون ساکونه تو دن تو ویده چیقوله تراقه؟ ولش برو. آبل کو. و بعد دیگه می‌گه من پولت یه هفته اجارش با من جواب پیدا کنه برام. می‌گه دو هفته اجاره، یه هفته با این. نه دیگه. بس که راستاسی یه چیزایی می‌ماسه. این بده اون گالریه بده سوس کت کنه. چی؟ این بده سوس کنه؟ گفتم آقا کیچی میگه برای خود همینجوریه. بابا یه تاریش می‌کنه، آلاش. من نکشادیو. چی داره برای خودت میگه؟ علی بیکاس. 320 هزار تومان اجاره شما میدی؟ پاشو. پاشو برو بروب. اینجا دیگه نماز نداره بیریم مسجدی جایی محریت هندی از خونه میاد بیرون یکم پس اندازه بلده بلده بدم کن محمود جایی طلابت بردار کم و کسری هم داشت اگه میتونی حلال چیکار داری میکنی؟ بلش باستمان. کن به من. بلش کن آبه روی زنده باجبتر از مرد. بلش کن بدونه بوده پیش جا به همون جانه میدنی بگه یه دم گله میدن یه یه مون از قرص حرام حلال کن اول اینو موسس خواب میخواد بیاد قلو بگیره که محمود بازم بهش حمله میکنه بابا میگه حقوق باز با با با اون کسی که هر سه ماههوار به بهونه اجازه زیاد میکنه سر زرسونیا میگیم رول مصطرب ترکیه دیگه رنگش رو نمیبینی این این همه حرف زدی ولی خالهو برو باشون کنده شو دیگه والله خدا بزرگه بیا بجر. بیجیش دیو بیجیش کله لا واسوسی خرچی بابا بوده چه جلوت گیر کنه اصا کم سن خیلی خوب خیلی خوب خدا گنمی ولی چی چی میگی واسه من هنوز نکرسم یه حافظه دیگهام بگم نه نه لالا خلاص باش باش شه لا واسه می کنه نکنه اشتباه جنگ بون تو قرون آخر پول این مستاجرای بی‌نوا رو که خرجه خونه‌خراابیت کردن از کلوتش بکشم ایران محمود چاوا گوند را جاسون یه دکتر کشتم باش وقتی اینا رو ببین کرد علی آخه درست است یا نه اینا این محمود, این محمود علی باقیه طلب میتری مادرش رو رو پشت اون با صاحب خونه حساب میکنه. حالا خودتون محمود گندم رو میپاشه به صورت صاحب خونه، و باز هم درگیر میشه. ما علی و محمود میرن به اتاق علی. گوچه یه اتاق کچیک علی یه میز کار تعمیر لوازم صوتی تصویری هم به چشم میاد علی میشینه پشت میز محمودم میشینه کنارش الو با مو بایده بایده بایده دا نه با دارفتن هم سرینو رو زمینه گه میگم گیری مادرت گذاش نونه کفترار بهشون میدهی یه اتاقو داشت همه دو زنشو دوده همه من هر کاری از دستم برمیامد انجام دادم ببینی که هنوز کلوف کلوپبار کردن این پول شراب شد. دو به زدم آبی. آبی. مالعه افسرده. تو اینجاستی باندی بابای خدا بیمارست و بعد از روش و راتش. دمود با موتور نمیتونی از روش و چی موتور من میخوای چیکار؟ دبی. موتور برای چی میخوای؟ پو باد دمی تو کیفه. نه پول منه نه پول تو نه پول بابای مهری. اون شیشمون حبس بحثت نبود فکر کردی کیف زدن ناخونک زدن به بار پشوانتی مردمه مرموره اینم سنبم پرزور شد میگم منم مرموره اینم سنبم پرزور شد تورم به تورش بخوره ناجور به جلز و بلز بندازم اشپول شرفو بی. نمیشه اینجوریش بیاغبتیه نمیشه با با. دادش محمود طول کفتر نشسته علی میخواد چایی به راه کنه داشت کجاست؟ با آفکین دعواشو رفت سر چی؟ نمیدونم کافکنشو میخواست ندارد رفت علی چیزی دستگیرش میشه و جلدی میپره تو به محمود برسه پایین راه به لای چشش میفته به مهدی علی میخواست بگم اومد که ببینم. صاحب خونه از در آپارتمان میاد یکی از پشت تیر برق داره سابخونه رو میپاد. محمود با یک آپشن صورتی مشغول پایدن سابخونه است. محمود میپره پشت فرمون و وانیتشو راه میفته. علی با موتورش سر میاد. ببینا. ای مادر خरल خوردی تو ها؟ کجا داری میزنم بیارید. یه میگیرم. خفه شو بابا. وقتی دعوا نیم ساعت پیشه شادش طرفه. باز می‌خواد نره داخل تیور دات کام. شب شده و ساخت خونه رسیده به محله تاریخی خودشون سر کوچه از یه تاکسی پیاده میشه و میره طرف خونهش کی میدونه لحظه شروع هر چیزی که یه کجاست. اونم وقتی هر شروع پایانه. هر پایانم خودش شروع. شروعه. علی و محمود با موتور سر میرسن. نگاه‌ها رو می‌ریچن روی سر الیاس از کنار صاحب میگذره و محمود کیف صاحب رو قاب میزن او بگیدیم محمود بگیده. بگیده. رو تحویل مادر, مادر میکنی میده میگه قابل شما رو نداره همینجا بمونی محمود این همه پول از کجا آوردیه یهو؟ آقا محمود مادرت میدونه که این رو بر ما آوردی؟ مامانت اختر میدونه؟ علی رو پشت بوم کلاه ایمنی موتورشو رو رنگ میزنه و بچه توی حیات دزد و پلیس بازی می کنید چهار ساتون چی میگی. از یزیزشونه آخرت هم بهشون گفتی؟ با تو هم ها. علی آقا علی کلاه رو پشت خودش قایم میکنه و به حیات نگاه میندرسه علی میخواستم بگم دستت دردن کنه یعنی از طرف مادرم آیش میکنم قابل نداره علی آقا خیر ببینی مادر به اون ساکار خیرتم هم بگو دست و بالمون باز شد تلافی میکنه مهدی توی کارگاه نخریسی و یه روپوش کار بتن داره یهو که بقیه هم هم از کجا یکی از کارگرها که حامله هم هست جلوی مهدی یه ذره میام اون خانمه دوستوری صحبت کردی؟ پلان چیه زاد خجالف. ولی نگران نباش بزنمت حال خلاصنامه رو بگیرم بشه سر جاش. پیشش میگیرم. برم. پس که را پیکا مدیر کارگاه پشت میز نشسته و کارش با تلفن تموم شده. کجا بازم درد دور ساعت ناهار میرم بعد برم پیه سابخونمون با پول رازیش کنم فعلا ویلون سیلونمون نکنم چیزه اینم سی تومن از اون پنجه تومنی که برمی بدین میمونه 20 تومنش بفهم با اجازتون پردار شدی بده ای صاف میکنی پیه سابخونه میریم گنجمش پیده کردی بول نقابل مارم که پس آبود میشه این انگوشکوچی که ایمارم بگیری مهری خانم ول میدم شریک نامردی نباشه مهری ناکه ها متوجه نوشتهی روی پولها شد و اونها رو از روی میز رئیس بر میداره روی پولها نوشته نماز روزی بابا جون شب شده و علی برگشته بخونه یهو حچراف روشن میشه و مهری با فاتی که تو بغلشه جلوی علی ظاهر میشه سلام علی آقا سلام علی خانم چطوری فاتی خ میخوری؟ میخوای علی آقا من وقت نکردم درست حسابی از چیز کنم یعنی تشکر. اخت من که چیز واسطه بودم چی شد این نقلی خبر خره؟ اگه چشای های وقت زدش رو میدیدی وقتی پول رو گذاشتم رو لش. چیز؟ اموز که از اینجا رفته دو نفر با موتور هر چیه جالو جمع کرده زدن ازش. بیشررف اول گفت از آهم مادرم هم بوده و ده تا من رو اجاره. ولی؟ تزرس هباسی اون تا نفر هرکی بودن واقعا دمشون گرد نه؟ چه بگم؟ برو بشه ما من برو مهری فاتی رو راهی میکنه که بره علیه آقا میگم نمیشه از این قدم خیلی را بر این فاتی خوشکلن بردانی شما مهری؟ میام این حشمت بدبخت میدونی هرچی سرش را زندگی داشتن فروخته ولی خب هیچی به هیچی چشمش بدتر شد یا بهتر نشده این دکتر دولتیارم که می‌شناسی الانم منیر به این گفت برای پول دکتر خصوصی نزول خور پیدا کردن ولی ستیش نزول می‌گیره بی شرف هیچ چیز دیگه اینم یا بعد همونجوری دست رو دست بذارن یا باز بدنش دست همین دکترای دولتی اینجوری بخاط پیش بره این تفل معصوم دیگه فرقی بهش هم روزم ندید چیز این شریک من جیبش خطر اندیشه اجازه شما بخدا بود. تو هم که من به چیز چیز افتادی حالا شریکت هیچی. خودت هم نمیتونی برای این طفل منصوم یه خیر خیلی برداری خودم من همی خود خسته خستم علی خسته خودشو با اتاقش که روی پشت بومه می چراغی که روشن میکنه باز مهری ظاهر میشه این دفعه منم هستم نزول خوره من نمیدونم چی میگه اه. من بعد از این وقتی خواستی با اون شریک دد دده کنه ببین کیو مردمو قاب بزنین و باش چیزی به خیرات مورات را بندازیم اول بدین اسکناسشو عوض کنیم اومدیم نوغلی خان هم مثل من اسکناسه نشون شده لگه پولش داشت علی بابا حرفم را شبه روم زولخره یادت نره ببین پای این چفتارای پول و پله دار بیاد بسد از من خیلی کارا برمیاد علی سر پاتاقش وایساده که محمود با سر صح بار اول ببینیمش می‌دیم. برو. محمود علی میرم به یه گاراژ در خومه محمود میره به یکی از اتاقهای طبقه دوم گاراژ و یه بسته تحفیل میده بعد بسته رو زیر کافشنش قایم. میکنه عدیلو صدا میزنه و یه گوشه از گاراژ بسته رو برای علی باز میکنه اینجا کار میکنه. اینجا چیه؟ بسته پر از قمه و چاقو و سلاح سر اینجا چیه؟ چی کار داری میکنی؟ اینجا چیه؟ قلنت های زیادی نوزون خوری حرومه اون پل حر رافتین شستی پیش حاجا مهری بلد باق دادی؟ ول کمک بدی پول دوزی ببین محمود من میخوام نافی پیش من اینجا پاک کنم میفهمی؟ ام... م... ام ام لازم رو دیدی؟ راستی تحقیقات کردی؟ ام, ام... ام... ام... ام... من از خمو اربدیتو نترش چیکار میخوای بکنی؟ ام... بعده پیدا من چور خاطر مهری تو یا میره؟ علی میزنه تخت سینه محمود و از پیشش میده محمود اینه یه بچه خوشحال یکی از کفدار رو از در میاره و اون میدوی پیش مهری که کنار قفس روی پشت بو میستاده. آخه این پس توقی که میگن اینه اوه. خوبه آخه. بیا بگیرش بگیرش گفتی شاگردش جوونه خودش چیه؟ دمه. خودش چیه؟ هی نگاهی به اتاق علی میندازه که چراغ روشنش از درز در پیداست دمه. دمه دمه دمه دمه دمه. من تو با هم من تو با هم بری فکر کن من سیبیلم بذارم دمه. با هم بری مغازه یارو خودش و شاگردش کرکر -کر میخندن بهمون. به یه نفر باید با اول دارم با اول آره بترسونه پیشم ببینم کده ناراحت نشو منظوری نداشتم من خیلی هنر کنم از اسم قمنت نترسم سم بزا. به من زمان بده فکر کنم ببینم چی کار باید بکنی خوب خوب محمود دست میشه مهری میده و مهری نگاه به تا قالی میذاره. علی از راپلو میاد پایین تا برسه سر کارش. سلام علیکم. شو. سلام مادر علی آقا. سلام. سلام. سلام. دست درد نکنم. ان شاء که خیر از جوونیت ببینم. من که گفتم واسه اون مقابل شما نتش. با عزت. دست به هر چی بزنی تلاشه. ان اگه بهش بدی راسش شه. رازی میشه. با عزت. علی دستی به سر فاتحی که یک چشمش بانداش شده است میکشه و میره پی کارش. ناقلا از کتل پسرامو دار شدی؟ چی شدی؟ مهری مشغول سرویس کاری دستگاه‌های ویسندگی علی توی راه پله منتظر مهری نشسته. چرا خاطر تلفش کردی؟ چرا صوت رو انداختی؟ برای چی میگی خوش بینا وعده به بعد علکی من شرکمو دادی؟ بعد چیه؟ بیا بریم ببینم. داداشا، باشا. اسکی علی دستم زندی دارم. ا حس نگران زندگی خودت بودی که گذاشتی من و مادرم اونجا بمونیم. ببین آقای خانومی ما اون رو فهم مختاریت دختر نایدا نیستم. آ. لازم اگه من یافتم تو کار خلاف. انقدر سفینه اون تو شهر باز هست که نیازی به طرف تو یکی نباشه. درست حرف بزن. مگه من دارم سنگ خودمو بس میزنم ترس به اونجاش می‌رسی. بابا من همو رفم غلط کردم به خاطر مادر بنده خدای تو می‌فری. علی غلط بابا پس لطف کن. یه فكریم به حال فاتیه برند خدا بکن چون فقط دو ماه فخت داره تا اون قرر هست تو سرش در بیاره بابای بریداشم به ببرتش مشهد یعنی این که ببینیم امامرزا چه خب خب به من چه به منو تو چه کهفاک کفشه امامرزا بكنی باشه میدونی چیه منم میرم به مادر فاتیح میگم علی آقا گفت موندن منو مادرم تو اون خونه با جون فاتی جون شما خیلی توفیر داره آره علی من تا آخرش هستم ماشینم بلدم برونم شمیدم بابا و چی؟ چی چی گفتن که ماشی راه میافته؟ علی من و تو پولی که لازم داریم خیلی بیشتر از پول عمل فاتیه. یه دقیقه وایسا. حاج خانم. حاج خانم. بیا چیو؟ فلش سلام این آقا میخواد بدونه شرطت برای چیه گفتنی ها رو میدونی خب دیگه هرکی میخوادهش بیاد تو همون بیمارستان تا ندیدمش ولیش داره ببرتش من بهش گفتم گفتی شیشمینی آقا باباش گذاشته رفته در به در شده من اما خرجی چهار تا بچه دیگه میتونم کمتر از این بفروشم پیکه تنمو فروشگاهی پر از اجناس عتیقه. مهری داخل فروشگاه من اینو میخوام فقط چیز دارم چک پول درشت مغازه پول داریم بگوشو بدین فروه خیلی علی و محمود با موتور از بیرون مغازه میگذرانون نگاهی به داخل مغازه میدازن شب شده و عتیق فروشی در حال تحتیش شده علو <تصفيق> آتویی فردا یه با برو در سرا ببین حکم جلب یارو که تا فروشه چی شد یادت نره ها یه خبری هم به من بده علی و محمود نقاب به صورت با غمه و اسلاحه میان به مغازه و کرکره رو میکشم کن محمود جلوی دهنش اگر مغازه رو گرفته مرسی که خور یه چند تو مرسی کسی بردان خلا دلش که مخورده گوله حرومت کنم فکر داشت مهری توی وانت منتظر برگشتن علی و محموده. شونه ورچفتو تمام من میس که غلطی میکنم می و می PU و وانت می‌کنم. از یه از پیش‌میترو میاد تو خیابون. علی میکوبه رو داشبورد و مهری وانه تو یه گوشه نگاه میده. علی بالا میاد. چی شد؟ دوباره همین‌طور دیگه. اونم اینقدر هستا به من میگن دیگه. ستای چم میشن دور میز کار علی و محمود کولر رو ولو میکنه روی میز. چاونام 20 تومانی بشه. من بود یه بسته تراول رو جدا میکنم. کم نیست؟ <تصفح> اینکه بیا منو بگیره. آقای، بده من،, بده من. آدم کاسه شماره چک پول مینویسه. ببری بانک بانکی میگیرن ردش کنی رد میزنن. من میگم 7 تا منشو بدین برای عملتش فاتی. <تصفح> میگم 7 تا منشو بدین برای عملتش فاتی. یه سرشا میدیم به خدیجه شا... هیچکس از این پول اگه میگن برای خودمون ورد داریم چه اینجوری میگی؟ یع علی معلوم میشه سم. به خاطر چاکی بی معلف افتاد زندون. نمیدونم با چه فلاکتی خرج خودشو بچه‌ش میده. ا بودو. کوچونزا. یاد بدی. خب نیست. <تصفح> حسابو jamais شم. پول‌ها رو برمیگردونن توی کیسه. باشه. علی با موتورش پشت یه دیوار زیر بارون شدید ایستد مهری در خونه ای رو میزن زنی با بچهش رو باز میکنه و مهری یه بسته تحویل زمین میده و مهدی مهری رو میرسونه به همکار باردار یه بسته پول میده دست همکارش چقدر قدرت داشتم لذت بخشی این که بتونی دست افتادهیو بگیری و بلند کنی اینکه بتونی به تاریکی چشمانی اینا اون روشنی ببخشی اینکه بتونی جای خدا باشی و سرنوش رقم بزنی اون بهش میگفت بس بسه. آیسلون و اوجانا فرناس جت هستیام غور جمع شدن تا خاطرچشولی رو بدل کنه علی ببین با زیر بارون کاسه آبی پشت سر خنده تو در دفتر نمایندگی آخره روی یه ویترین مخصوص خودش توی دفتر رازداریه بخش شهرستان بسا خدا به یسری انقدر میدونه میدونه چجوری دورش بریزم یارو با چیپ سوپ و فروشی به ما نرسیده وعده های ساختمون همه زای تنگ دفترش داری چیکار میکنم یه رو وجب میکنی میگم این 90 چشوادونیه کی میاد بدهی ما باقاض صاف شه هرتیو میگم رفتن پروسه جو کردم گفتن مشکل جواز داریم درخواست دوباره دادم چیکار کنم مشکل جواز داری یعنی چی باقاض در داشته باش یه ماشین مدل بالا ها بیرون دفتر پارک می بیکس 150 هست سلام با خیزیم شکل با من بوده تو علی مهری زدم به تلیه یه جایی بیرون شهر بین چند تا دار و دلخ آتیش بپا کرد علی ببین من و محمود بشه حساب کردین ببین بران در دردواز و نفری که حرفش رو زدین یه چیزی حدود 120 ملیونیگه لازم داری چیه؟ نمیگم که یه جا ولی حداقل اقل نصفشو میتونیم از این سابکاری بیشرفت من به سلفید باقیشم اون دوتا مایه داری که محمود میگه ها؟ اصلا خودم میرن موتور سواریت میگن که دیگه منت جنابالی رو نگشن محمود از راه میرسه با یه پلاستیک پر خورک حالا خوبه باش کمتا میگم دل درمانی در کن. نگاش دیدی؟ میبریدی عفه نشی چیه دفتی تو هیچی حقیم میگم حقیم میگه کاسبه حقش نیست تلکش کنیم نمیگم کاسب حقش نیست تلکش کنیم میگم اینایی که این میگه مفخور نیستن. نمیگم مفخور اصلا تو بگو ها تو بگو حقیم مفخورشگی ولی مفخورا از چه چجوری شو کافی یه صبح تا مسافر این منور بکنی رنگ و رنگ از ذهن مسافر ها, ها میشه یه روز به یکیشون گفتم آقا خودت چی گفت چی گفتم حالا هر کسی بالا خور نکردی با ما مثلا یه مش مزدونی که حقوری دیگه‌ها یادم میمونه من تو این ها گیری کردیم ما؟ دنبال یه نفر میگم که حق داشتش حق خورا رو ردیف کنه خسته شدم از من نکشی منم تو یه چیزی به این بگو مهدی میره طرف وان با این حرف پایقات باید همه اون بشی به حق خوری یه دو نابود شده علی یه لحظه جلوی محمودو میگه عقلت درست نمیاد محمودا میره دنبال شده و رفتهگر محله این کوچه رو جارو میکشه سلام <تسجال> سلام علیکم علی باور نمی‌دین که عاشق خالهی مرو کیشاشون داره می‌کنه میگم روز موونه دیر شد من می‌چو یه دو تا دیر وقتت علی رو گوشه‌ای می‌کشه و بوکسش می‌کنه ایسه میزش با تلفن مشغول صحبته یکی از زن به طرف خوابیده ایران من از کارمندم میخواست قرار کنه بشتر. که دم در میگه چیشون دید رو مهیام با نقاب بارفت میشه دست میزنه بالا چیکار خرید خونه شونی دونی ریالی 5 میلیون پیش میذارین برای یه خونه 500 هزار تومن بر قودغ زحمتی خدا پسنده برای این جانش اسلام تلفن زده محمود کارمند رو با تهدید جمع میکنه یه گوشه بشه بیاجوم ازش بپر علی دکتر دندونپزش رو خوابونده روی یونیتو براش صحبت مگه ببین وقت رو اندرزه دکترو در اندازه 11 تا درس اون نشونه من کلی شرمنده استاد دانشگاه و کارشف و هنرمندی میشه که یواشکی گوشه خیمه مسافر کشیم کن واکو اون سیر نشدنی واکو علی دهنه دندونپزش رو با آینه مخصوص نگاه بکنه حالا یادداشت کن دوتا پر کردنی. بنویس محمود نشسه روی دراور مخصوص وارد مطلب علی رو میذاره تو دهنه دفتر بسی به مجزه بیچارت گفتی دفتر بیمه تو دندون پزشکی از کشکم کش داره همین که گفتم چقدر شد دیگم دو میلیون, و دو میلیون دو میلیون دو میلیون نه دیگه دکتر سال پیش همین موقع همین بود پنج میلیون افصای هزار تومن دمزه گاختنده یکی گلوه حرومت کنم ها ها ای ها چهارده پنج یه با دیگه؟ چار چارده پنجه دو محمود مهری از یه بوتیک لباس در حال فراد فرانی می‌بینیم مداربسته محمود و علی و مهدی رو می‌بینیم که می‌دوان توی نمایشگاه ماشین. سه‌تایی می‌شینن توی یه ماشین و بعده شکستن شیشه بیرون مغازه از نمایشگاه فرار می‌کنن. علی، سه‌تایی ماشین رو دیدی که احتياق‌های پولات شهر دارنده. عباس، علی به شروفی توفنگشو طرف محری گیرد علی میاد جلو کنار محری میشه محمود رو سنده بیگه عربت میشه بچه ها رفتن به همون پاتاق جنگلیشون و محمود با پولایی که به کمر بسته میرخست محری هم یه تا مشغوله تا پولایی مهری لباس مردونه به آره فکر کنم کله یارو موخشو جابجا کرده دیونه محمود تابش بابا اونا لبنا فهمیدن آقا مشو جاسه محمود محمود آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ و همورای این نیروی انتظامی مشغول دارسی ماشین دوستی است میک از یاسر دو یاسر دو رو بوشم میک از مستهدر باشی سارقین فردرو پس از برخورد با درخت از تنه متواری شدن در تقییب سارقین هستی علی و مهری کنرل آتیچ نشستن اینجا را کجا یاد گرفتیسا این قدیم های مهندسی بوردم سرین ساخته پس بیر اینجا وزیل اختا کابشن تو بدن اینجا دن می گان اون مادرتم که چشپراته ای بابا الان مدتی مثلا دارم با دستگاه شبکاری کاری که عظمم بهتر شه امشبم روش ببینم تو راست راست علی بیکسی آگه 5 تا آبجی و 3 تا داشمنو بی خیالش یاره من تو میگی احوال سال رفتی نه خدا رحمت کن آقا مو یه کارگاه جوشکاری اجاره ای داشتم داشت شایدی شغل دی می میکردم هوس نگواشتم بردار شما گفت آقا من خرج شما دو تا نمیتونم بدم <تصفيق> ما دیدین نون بیمنت خوردن بهتر از حرف پدر خوردن جم کردم اصلا اومدم تهران چند سال پیش 18 -19 سال سالم بود عجبا چه کارایی که نکردیم شار ی دونبای شگفت قنادی تو کوره پاس خدمت آخرش رفتم ور دست خدابیه امروز آقای جواد شدم شاگرد کار صوتی و تصویری بابا بارو کلاتو بذار بارتر که دختر شدی خود ننه من غریبم در یاد تو اگه دو سالین لابلاها نون دولت خوردی من 15 پونزه که بابا قلیر شد کار کردم و نوبیاره خونه بودم اصلا تو فکر میکنی تو راحتر کارگیر گیر یا من معلومه تو گم بمير بابا <تصفح> خب نگفتی کیه چه شکلیه چی همون که باش میگه اینجا آه اسمه زیباست خونه زده زن بوده بودا رو همتش پسرش جواد میگه هر موقع یه کار مستقل آوردی میدارش میبرش کنتون شوخی میکنی؟ خیلی غشنگه ششای دروشت آبی داره موهاش صاف تا اینجا یه دوم داره انقدر پیشه به مای هم محبوب به ماشینش برمیگرد و از بالای تپه نگاهی به علی و محریون محمود نشسته کنار حوض حیاتشنا و دست و صورت می کجا بودی تا حالا؟ چشان به در خوش شد بوره چی شده؟ به تو بار کرد مرد می به به علی گفتی؟ به علی گفتی؟ به چی فکر می کنی؟ خیال کردی که با این شندر قاضی که خود لالمون گرفتد میانی میذاری کف دست من میشه برای این دختر جهاز درست کرد؟ با تو هم میگن رفیق علی رئیس قرض بازاره رئیس قرز بازاره میگی یا خودم بگم رو نمیندازم چیه؟ رفیقته قریبه ها میرم پیشش این دختره بیچاره تاکهی بعد بهزره امروز فردا کنه اگه فامیلای پسره بفهمن دستمون تنگه از خجالت باید بریم تو زمین فرو به سبب بوتشو اصلا نخواستم. مادر محمود گرده به خونه و خواهر محمود از پشت شیشه نگاهی به محمود میندازه مهمو توی بازار چرخی میزنه و میره به یه مغازه توی داره مغازه به ظاهر فروشگاه محصولات فرهنگی و فیلمه. این دوومین چکه که برگشته. اسم و آدرس یارو برگشتی برگشتیه. رسیدین ها معطل نمیکنین اینا. جلدی میدین سراغ مغازه یارو. میخوام دو روزه پول بشن. موقع ما مغازه رو خرد کنن. اوف آقا بدی. چرا شو؟ شو آقا دو سری هم برمیگردین اینا. با آقا سفارش تون کردم که نقش عکسه مرتون بگیره. محمود برای اینکه که طرف متوجه منظورش بشه یه فیلم به صاحب کلوک نشونی فیلم فروشی نداریم هم چیه؟ نمیفهم چی میگیم یه چیزی روی کاغذ میگیسه گوری لنگوری میخوایم نمیفهم اصغر گوگلا کوچوشه. گه زندان. چمولی. چنا. اولن شروع ادش کن جونت. گه. محمودی دسته ترافل دوستی رو میذره روی این برس. من مال خر نیستم ها. ها؟ نه. برداشتی؟ بعد. بعد. پهیدا کردی. لو که کرده باشی یا من 120 خوشتر نمیخرم. ببین 25 بریم مامور کریستی سی, سی میخرم. همه جمع شدن توی حیاط و علی اص پشتگوم خوشحال به برگشتن فاتی نگاه میکنم. <تصال> همسایی ها شول زرد بار میزنن همه دوره هم جمع همه و شول زرد قرار پخش کنن سلام قبول بشه خربت خربت یادتون نره. همه علی؟ علی تره. اینو نمیبینی دل میکنه. ما کسی آره. که با یه آشغال رو برو پسرک تا علی رو میبینه پا رو مهری بریم. والا یه وقت با هم رفتیم بیرون یه ازساک خوشی نصیب خاتم خانم بخریم. ایبد چش؟ چی چیزو با هم بیا بیرون؟ قبول بی کردی برای عروسک این بچه بخرن. میرسن به خونه. ماشین وانتی محمود دم و علی اشاره ای به ماشین محمود میکنه. خالصا شبیه تو خونه. چه میدونه؟ علی یه بغوصی به ببین تو شوخی ها مامانش بهم گفت دارن این دندون در میزنن برای لیلاشون جاهز جور کنم. فکر کنم گیرو گرفتاری داره. علی از زیر لبونش بکش به خاطر من. چیه؟ چه صدایی باشه؟ اصلاً دعوا رو ناندازم. گرفتاری داشته باشم بخا هر بدبختش جربتی داره. دو روز خوب بودیم با هم. بفهمی چی میگم؟ ملی و مهری که رستوران رسولان سرگرم غذا خوردن هستن یه متر در دو متران در نگم یه در یه په هشتاده کچیت هسته از عوضش خودمه خدا رو احمد کنه باقای جواده و اون بیمارستان سفارش من بهش کرده بود در واقع برای من کمک خالی جواد بشتم من, من رو بوشتم تعمیده ستی تصویرون را بندازم من گفتم که چی که چیز دیگه دیروزود داره سخت و سوز نداره خب بقیهش بقیهش آم بخوام دو رو اونجو خط بکشم چیزه تو منو کشوندی اینجا که بگی دیروزود داره سخت و سوز نداره یعنی نه دیگه خانمی یعنی متجدن شد چی میخوام نه معلوم نیست دست هم یعنی که اگه شما یه ذره سب کنی کارهای من به تک بیفته. بابا میتونی دو تا اتاق اجاره کنیم اتاق؟ بلی که صافت کنی؟ ای بابا چه حرفی میزنی؟ حالی یه چیز بدنگم نگه نگفتی این چیزهایی که میمالی و خود روست ندارم یک دوم که دوم که بعد طرز هر زدن تو درست کنیم بابا رو رو برم خیلی پر روی من حرف زدن ما درست کنم یا تو من حرف زدم بلد نیستم. یا تو که اصلا نمیتونی اول به یه دختری بگی دلش میخواد زن تو بشه یا نه؟ یه سری نشستن جا قوی چیزایی میاد که اصلا نداری. یه متر در دو دمی، دو دومت در یه مت. موردش رو خودتو خاصگریت کرده. به خاله چیزه کنی؟ نشستن چون الان یه متر در دمی، دمی در یه مت. اینم از این کوبیدم که قیافه مامانم نمی‌دوند چرا من کرد. من میخوام سر شما می‌پرسم خودم به جون خودم به همین مرکب پسن و اول مال های خانم می هم بیرون حالا چه رسه به این کنم چی میگن خواستگاری کنم خیلی خوب بریم حالا که اینجوری شد من برای اون یه متر در متر و متر در یه متر بعد حالا حالا فکر کنم باشه شما ناس و حالا حالا ببشید یه پورسکو... یه پستکوده می برید علی برای حساب کردن میز نیست به پیشخون رستوران پیش مقول همه رو بگیره ایشان بله بله گوش هم با شماست خوب هستیم برگانه شما باقالی پلو با گوشت هم داریم بله با گوشت بره تازه علی منتظر میبونه تا پرس اضافه برای بردن بله می یه متوجه روزنامه روی میزه میشه 150 تا برگ بله 120 تا باقالی پلو برگانه شما برمازی هم چهرش میریزه به همون یکی خورده و در هم بر میگرده پیش مهری روزنامه نشونه مهری میده توی روزنامه مثلا به ایاران در شهر نوشت شد با تو شوار دوزندو علی و مهری سوار موتور مشغول گشت زدم هستن مهری روزنامه رو برای علی. کنیم باید نیروی انتظامی چکولهایی که پخش شده هفته بیش از یک نمایشگاه اتومبیل به سرقت نفته بود تاکنون در این ارتباط هفت نفر از متکدیان <متضوع> باید یه ذر یواش مارد دیگه این گشت زدمی بود ک دستورسان چیس شدند، دست چیس شدند، ولی مقامات انتظامی قضایی تغییر شدن و این آیا یعنی چی؟ امیدوارم که خودش می‌تونه این کار کنه. که بیایم وقتی مجبور شوم بیام و نمی‌گیره. چکش افتی سعی کنیم نایب ولی آماده‌ای؟ امیدوارم که چی می‌کنی؟ سر کش، سر کش بود. جواب بدی. این یکی ازونه که با چیک پلایت رو به دانستارفته دوستش کیافی تور دیدم تو می‌شود چه خلاصی خیلنام راحت شد آخه الاغ علی دورو همه اونایی که منو و تو ایمیجشون پول دادی مگه مثل تو مقطری فان که نصف من چی به چیه میگه برو تو تا میگه برو ان شاء الله خلاص قرمون واسه زنگ سر علی هستی میخواد بره به اتاقش که سب کو بدون من نرافوش اول من میرم یه جور حال کار اگه یکی از ما چیز بیفته زیر رخت مرده بیا همه مطبخ تو که میشون پول دادیم تا خبر اخرت برگردونام چه کار کردیم دادر چیه بابا برای کار رفته بودیم چیچی و شوهره خوبه نیم میگم برای کار رفته بودیم داخل اتاق مهری و مادرش زنی منتظر میشسته علی آقا سلام علیک سلام مادر از بیرون اومدی مهری ما رو ندیدیم نه چه تو چی علی آقا یه دیگه مادر کاریت علی متوجه میشه که باز هم یه مورد خیلی هست بیالا من منم قبول دارم فون بعضی وقتی میخواد حرف حرف خودش باش و رئیس بازی در میاره ولی محمود من و تو تنهایی نمیتونستیم محمود حرفم مفت چرا میزنی چه ربطی به کربدان تو داره من رفتم باید. باید. علی کشت دیوار منتظر و مهری از خونه بیرون میاد و از پیرمرد مرد علیلی خدافزی میکنه و خودشو میدسونه به علی. اشکت هم از یه روزنامه جایی ما بار خود کرده بعدی شجاست یه جایی طرف سرچشمه علی رو پشت بوم چراغ والور خودش رو داره نفت می‌ریزه. پیرمرد بدبخت یه عمر خونه دل خورده دختر بزرگ کرده. حالا بچه‌اش سر خاکه. قاتلش زنده است. هر چی من میخوام این موضوع رو بهت خالی کنم تو حالیت نمیشه محمودم تو قفسه کفترهاش، با قفسهلاش مشغول نمیشه ولی این مرد دستای با این زن که مامانم آورد به خودت افسرد نداره اینو که. تو میگی کی زنی؟ حالا <تصفيق> هی هم داد بزن خانم بفهمی که آشخون بفهمه که داشه یه جور پشت شوهر زنه. با ماشین رفته توی ایستگاه اتوبوس داره چهار نفر رو کشته دیگه بعد کمکش کنیم دیگه بده خب پیره مردم بعد دیگه بده دیگه یه نامردی زره دخترش رو کشته بهش گفتن چون جگر گوشه فلک زده زن بوده باید نصف دیگر رو بده به کس و کارای قاتل تا به برنش بالاه دار ما پول نمیدید کسی که شاید عمرش به دنیا باشی بره واله دار کی گفت عمرش به دنیا؟ اصلا امشب چرا گیاتتیشه بگیر شدی ولی این بالاخره هست یا نه؟ حس؟ تا وقتی من ازش بخوام راستشو رو بخوام تو شیشه بشم اینم که فایده این کارا چیه فایده آره فایده فایده برای من برای تو برای اون بدبخ بالا بری پایین بیای کار ما دوزیه با جان آب کشیدن و این که یارو فرش فروش با زد و بند و املاک مصادره مردم موقلی میکنه حل نمیشه خیال راحت شد؟ دست درد نکنه خانم تو یه جایی که که دست خودت درد نکنه آقای تو کشون دیش نمند تو که حالا شدی آدم خیره و جلو دلار راست میشن تصمیم میگیری کی بره بالای دار که نره بالای دار باشه کیفتو بکنه آقا رئیس دوزه ولی اگه آخر این ماجرا برای تو بشه یه زن خونهدار دوز با دعای مادرم برای این بدبخت فلک زده غیر توف بالا هیچی نیست این که فقط به خاطر من پاشو گذاشت تو این ماجرا علی با یه سنگ کوچیک محمود متوجه خودش میکنه اون شب تو کوچه چیا گفتیم بهم مهری کنار یه تاکسی استاده و تاکسی داره تکون تکون میخوره مهری محکم میزن رو صندوق تاکسی ساکت علی توی یه فرض فروشی و مشغول دازدیم قرار محمود از غفلت علی استفاده میکنه و یه دست از پولا رو میذاره توی جورابش اما مهری این صحنه رو میگه تصویه عداده کنه عوضی بس اونجا ستایی سوار و تاکسی دوستی شده و فراب ستایی توی اتاق علی دور پول ها نشستن توی کاری با من نداریم برام کپ ها رو بزارم بسا هر کدوم از میکنی سین الیون تومن داریم سین الیون تومن آقا زحمت وکی ما خودتون بکشیم یه جوری هم خرج نکن در همسایه ببره منو چیکار می‌خوام برای امتامون می‌کنی مادرته اون پیرزن چند روزی که تو اون اتاق نمر بمونه بعد خرج دو و دکترش کنی هم خرج عروسی خواهرته بعد دیده با. ده به کوفری ما محمود کی دار ها تو چه شکلی میخوای خرج عروسی خواهرت رو بدی یه جوری خالی نه آدم باورش بشه منم جایی برای قایم کردن این ندارم مهریه ز خارج میشه نه دو پروزه. محمود با اکرا پولها رو برمیبره محمود بخواد از خونه ی علی و محری بره به خونه ی خودش که با محری رو میشه. به خودت گفته اگه پولا و سکه ها رو نگیرم ازش جهاز لیلا که شد نمیدونم چی بهش بگم نه؟ به ای. با عدودو کردن خودت بر من به اون رو نزن تو مغازه یارو کنار گاف صندوق دیدمت ببین دیدمت میخوای جرابتو بگردم؟ هر دو تامون بد جوری ازش رو دست خوردیم نه؟ فکرشو بکن اگه یک ساعت جلو خودتا میگرفتی الان نجوم نبودی اینجور جلو من سرخ و چی حالا دیدی فرق اون با تو فقط کر بودنت نیست میخواد خیلی متن ما همدی رو داشته باشیم. علی میخواد پول رو زیر تختش جاساز کنه اما پولها زیر تخت جا نمیشه بعد یه خورده تلاش کیف پول رو محکم میکوب زمین. مادر مهری در حالی که آینه قرآن دستشه با تعجب نگاه به یه آپارتمان شیکی بزرگ میدرسه مهری با یه چمدون قدیمی از راه بله میاد بالا و میرسه به مادر چطوره؟ خوشت بیان. ای گوهاش نزن شده دارم سلام علا سلام علا داری سلام, علام. سلام علام. آقا به بعد اونجا سری برو تو بفهم آقا محمود به کمک بقیه دارن از بابا اساسی مهری و مادرشو جا بجام ساعت بار بهت کفم آتش آتاش خالای آب رو بر نیار با خودت گوش نمیدی که بابا. بابا چی میگی مادر؟ هیچی با من میگه نیاری آب روبر میده مهری باستشو بگو نکن از این علیه بیچار پول گرفتی اخ نمیتونیم بهش برگردونیم ما یه بار بهت گفتم رئیس کارگاه شدم وام ده ساله گرفتم تو هم هی رو این اعصاب من عصب بزن اینا از این پسره که نمیخواستمش شو بندازم تو که باید پول بدی بذار یه چیزی هم گیر این زبون بسته بیاد این زبون بسته زبون بسته بابا احمد تو واکن خونه رو ببین خونه شو ببین اوپنه خوشت میاد علی جواب تو مغازه صوتی تصویری ام ما یه هلا یه نگاه به فامیلی عروس خانم منداز شناختی نویه کیه؟ هر جو افتا همون عقبی ملیه آقا ناجور خیاه کردی واسه چی باسه عروسی پس همه مایه گذاشته میخواد یه شب خوش رو کنی به دون پول اون بالا بالا میدونی که واسه با بزرگی عروس خانمو تو این پروژه ای که خودش دور دوره ورگیش یه وسطش نباشن واسه چی تو رو دوت آم گه باداری میاد میشینه به گپ و صحبت اسمش ابیه پیریز اومده بود می گفت که همسایه این مچیکار میکنی تو سرمایه خاستیم بابام هست تو اوور هلی. جمعه به جمعه شکار خوچ و کپیشون براز یه جفت کفش هم به سر تا پایین من و تو. جواد می از ث من تو پل برقی میسازن ولی نردمون اردی نمیشن. بپ خام بالا رفتن از این نشه. بچه شدی اومد ده هم مزه مزه کنه, کنه علکی گفتم. هر داره دستاله با نمایندگی بدون اجادشون آب هم نمیتونم بخورم تحقیق من تو آقا تو توف این گم میشه که پیدا نمیشه داره که جمع میکنی میده خونه علی روی پشت بوم داره لباساش توی تشت میشه محمود شاد و شنگود جهیزی خوهرش رو با میاره به کوچه کل محل برای شادباش باش دورش جمع میشن. باساش آویزو میکنه و از بالا به خونه خالی مهری و مادرش نگاه نمینداید کار امروز الان تموم رو با موتش دم سوپری محل وای میسته تا طبق عادت تخم مهور بخریمصف سوپری محل هفت تا تخم مرغ براش جدا میکنه. علی منتظره که یه هم ها متوجه های پسرک آشغال جم کن میشه پسرک آشغالی که دستش بود و میندازه و فرار میکنه علی هم میدوه دنبالش بایسته بینم بایسته بینم بایسته بینم بایسته دیگه، بایسته بینم علی نشسته رو مطورش و غرق فکر پسرک آشخار جنبان سرشو از در خونهش یواشکی بیرون میره آقای اگه میخوای نه دوزنه با میره تو علی هم پنخونی میره به خونه پسرک یه خونه فرسوده که زیر زمینش منزل پسرکه و خونه بادش یه خونه نم پسرک با پدر و مادر و دو خواهرش توی اتاق سر می‌کنه. سرکی چای میزارد جلوی علی که نشسته کنار پیرمردی ونجو. که برش و ساختمون های شیک توی شهر خود نمایی می‌کنه. علی توی پاتوق همیشگی خودشو و دوستاش و تنها مشغول سنگ توی آب برکه است. محمود با یه وانت نو میاد بالای تپه و برای علی بوق میزنه. محمود مهری دستی برای علی تکون میدانه و با ظاهری شیک میان کنار علی. علی از یک پلاستیک یه سری برگه آزمایش و رادیولوژی در میره را و میده به مهری و محمود با با که تو بهتری چی علی با زباره تو این خاک و خلاقه را رو رزشتی من بعد نیم سایدگه جایی باشم باشتا بعد یه افتی پیغون پس تو مصدی شریفتون شدم مزخره نکنه در به در دنبالی در کار درست سابیه کنه در چیه قضیه اینه چیه یه بنده خدا در 15 سال پیش تو کارخونه مواد شیمیایی کار میکرده. حرفش میشه اخراجش می‌کنن. دو سال بعدم بیماریش عود می‌کنه. اون تو هیچ مدرکی نداره که ثابت کنه کار با مواد شیمیایی براش آورده. خب ما وقتی از اینا سر در نمیاریم. گفتم در جریان باشین. این دکتر آخری که بردمش گفت هیچ امید به بهبودش تو اینجا نیست. اسم اسمارتس دکتر تو آلمان بهم داد. می‌خوای بفرستیش خارج؟ حالا من که تا ساکما بازو بخشش کردم گفتم اگه تا تمامه شما چیزی مونده چون کلای خیلی زحمت نداره. تو پول با... با... با... ما... تو چی؟ منم که پول پیش خونه و یه سری اصل خریدم باقیشم با یکی تو ساخته اون اون حرف زدم بندازم تو یه کاری حالا این یه بار هستین؟ ایده با... ایده. تو به من چی کار داری؟ ببین دفع آخره ها من دیگه نمیخوام این غلط رو بکنم. چه جوریش و کجاش بعد میگم علی تو این حفظ قرار نظریه من خیلی گرفتارم باشو تش بهم علی تنها میره و محمود مهری محری با هم علی سری به مغازه ی جواد میزنه که حالا با پسر حاجی یک کاسه شده. جواد و پسر حاجی کنار هم میگن و میخنن جمعه یاده حتما تو معلومه کجاییه یه آدم می در خونه در خونتون ایبی جان علی ایش. علی رو میکنه به فسر حاجی بسی که تو و بابات بهتریم دو به تایی مخشو زدیم نه چه؟ این دریبریه چیه میگی این دست من جریه زبونش هم فقط خودم حالیمه شما برو به زندگیت برس باید نیست بیمینم قربانت پسر حاجی از جوواد خداحافظی میکنه و یه نگاه تأخیرآمیز به علی میندازه. حاشا دانه در میاد میگی دیگه. من که فرسید در دنبالم، گفتم بعد از همونایی که قرار بود نما دیگه چش با دنیا بیا، شیمی علی زرد نمیکنه. شیمی رو بزنه. علی شیرینی دست مجیدو پارت میکنه یه گوشه خوردن نداره. خدا خرش خوب شناخت که بهش پالو ننداز. و تایلات لبگور بابام قررت کرده یا یه وجب جا. کوسنده سمدن جرات کن بیاد ببینم. بهت میگم صحبت میکنی یعنی صحبت میکنی. اومده اینجا رو بخرم واسه فروش محصولاتشون من هم شرط کردم شریک خبتم وای میسن بالا سر بخش شهرستان بعد کردم سپردم جایی سیمولایم لعیم کردن وای سینجا درست در بگیر و بیزینس بکنین آره اسمالو رو دوست نداری بادم بیسن در پرت باشه سن ما هر چیست بینیز فریمان کنگ کدشون سم شاید مغازه بود سم باشه برو برو رزتی آقای بیا جرب کن بیا اینج علی میکوبه تخت ای جوادی یکی از کارگرها ها رو جدا می کنید آقا چه کار آقا آقا الان می بینم بتا. اگه ببینی الان هم ببینی محمود کیسه های مسافرتی حاجی ها رو از اون روز خالی می علی کیسه ها رو دست به دست میده به محمود محمود اونا چیه؟ بر علی چه خبر اینجا؟ چیکار کنین؟ اونا خودشون توی سوریس کریستو چن. آقا اجازه که نیست حج اون یعنی چی؟ اگه هم سیادت مصع باشه یه جور سیاحت عبادت که نیست. ببینم. مفتی شدی من حقوق صادر می‌کنی آقا دوزده حقوق صادر می‌کنه. ببین کی واسه اون جنازه نماز میکشه خانم دوزده شما نگران نباش. اینا پیش پول حجشون هم دادن. هرچی پول طلا مین قرار بشه سوقال بر اکبر آقا عقرصا می‌شه میره توی جیب مش عرب که خونه خدا کردن تجارت خونه. مندای خدا اگه بدونم پولشون برای چی و کجا خرج میشه مطمئن باشن که خدای کرده مارو سر راهشون رو بده ها اون اگه من دوز مال مردان تو کی دوز ناموسی بایسا علی میره داخل اتوبوس و ها رو دونه دونه برمی‌داره تو سرده به سرده یا بر داشته نمی‌فهم این دوزی از ازیش مش بدبختی چراس که آرزو داشتن هر از زیارت چی په دزی که دوزی بود تو مملکت ما این بدبختی چرا زیاده. یا صبح تا شب نداریش رو اما همچی که میگم بفهمو حجه دوم سوم بفهمو پیش خرید خونه بفهمو پیش خرید ماشین بفهمو کوفه بفهمو زهره مار حفیا خالدوشو پول بیان اولی نفر میمینن تو صف صفتنا مهری کیسا رو از وانات محمود برمیگردونه و خالی می‌کنه صاحب کون ببینم اصلا کی گفته که تو هرچی دلت بخواد حرف خودم میتونی بگی اگه اینجوریه من میگم این دزی از خدا خداش نباید بشه. نباید نبشه علی این مهری رو میندازه اون برکه محمود هم در جواب یقه علی رو جمع می‌کنه دعوای علی و محمود بالا می‌گیره چه چرا علی نه خدا رو اون کهشا می علی تو رو خدا منش خیلی دی ای نظری همدیگه رو خونه رو جهنم. جا هم نه ما شاقی بردار خدا رو و خدا رو رو میده ش می روما علی اقات دیگه کلو قرار بره محلی و محمود با وانت خالی می جلوی خونه جدید محلی. به من مثل علی نیستم. مری کپشن دزدی شو در و میده به محمود. بیخود از آب گلالود ماهی نگیرا. وسط جاده موقع دزدی میتونستی جلوشو بگیری ولی نگرفتی. فهمیدی؟ علی ولو شده کنارو چرخه اتوبوسه و کیسه های مسافرین حج و عمره دوروبرش ولو شده روی زمین. علی به خودش میاد و دستی به گردنش میگشه نگاهی به کیفها و کیسه های ولو شده میندازه و بعد به آسمون نگاه میکنه علی می روی در خونه این مرمو سر بله خورم چی شد علی آقا؟ چیزی نیست مموطا خوردم زمین نه بودی میگیم بیاد بیان محمود هم از اون ما سا کشه بس گو برکار نید صفحه بس رو برکار نید علی آقا بکر چیزی نکیش چرا بیدرم نکردی؟ ما نفهمیدم فهمیدیم چه جور کاری که میگی دو سه صد میخوابی دوباره میری دیگه شبکاری نمیرم میگم به مدیر کارگاهمون خدا افسوس مهری با عجله خونه میاد بیرون مادر مهری تو خونه مبل شده اش نشسته جلوی تلویزیون ظاهره محترم در عرض همین چند روز آتی با یک پرواسا به عربستان فرستاده خواهند شد من همینجا عرض میکنم که ما به جد پیگیر این مساله هستیم و هر میدم متخلفین رو به صورت تعقیبه قضایی بزنیم سردار به سرنخایم رسید بعد مزد تلویزیون پلیس به و نه آزاد میکنم. مادر رادیو و و فیکی. سری تلویزیون رو بیشتر میکنه او میره باش پاسخونی، اوپن جدید مادر انگار نتیجه هیچ چیزی شده. باز در بالا سر بعدی فهمیدیم که یکی دیگه شون 20000 جوانیه که هم دستوش، هم دن و آب و سدم کنه تا یادش نشناخته بوده. متأسفانه بعضی از ژرای دارم می‌تونم مزیف رو شم بیشتر ایکوی به ماجرا دامن زده. مری خانم چند تاشم بخاطر ما صاحب کلوب ویدئویی داخل مغازش میشه زیر بار نمیرا نسخهشو شد پیچ آره من گفتم زنگت میزنم سوم محمود منتظرش بود این رفیقمون پشت در پاساژ نشسته بود منتظرش بود محمود چند بسته ترابل میذاره رویم روی من که اینقه اینجا پوله نق ندارم می درمی جمالی به پرست از دو خبر کن که اوضاع خیلی زهارته این طرف کره خبر نداره که خودش چک چکپولاش همه تسکیلی و شدن چونه تو چایی میکنی؟ چایی میفستمش بره پول بیاره پول؟ جمالی که این دسکیل بشه ها قصه, ممتازه ممتازه قصه. بس. بس. از خرگوریلو اومدن اینجاشو سغرا کنه ها دوبله برای ما شهر میشه ببر ارم برمیگردی تخمه بخور دو دو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> علی خابیده تو خونه که صدای <تصفيق> همسایه ها رو میشنبه همسایه ها توی حلیت جمع شده چی قبول میکنه منم زیر بازار چه شنیدم بابایی هر خود چه شام زهره خانم؟ دارم که گاف می‌زنم، تا الان بودم. داشتن میگفتن تلویزیون دیشب گفته بین دوزا یه جابونی کارو الانم بودم. اخترخانم راست میگه، الان داشتن تو رادیو میگفتن. علی آقا. علی آقا محمود دیشب کجا بوده؟ علی من که اصولی دوزو خود محمود منتظر تا به پول هاش برسه. چه جای دست باله پوله؟ هز. آموا را برفرس. آره قربونت تو آره قربونت برم. زودتر برسون. بیرون مغازه چند نفر جمع شدن رو به محمود نگاه میکنن. محمود دست لب خول میفهمی که لو رفته یه دست میبره زیر اوبرکوتش و یه قمه در میاره کیفشو بر و میخواد فرار کنه محمود از لابلای جمعیت داره فرار میکنه و دو نفر دنباله یک گوشی تلفن دستشو و مات به یه گوش نگاه میکنه. محمود خودشو می رسونه به خونه این مادر محری در باز می کنه محری رفته سر کار از اینجا برو از اینجا برو رفته سر کار پولیس داره میاد پلیس می, می فرمه اینجا برو پلیس. محمود از راپله میاد خاین چراغ چراف پلیس پولیس رو می بینه. محمود فرار می کنه رو کشته. پلیس هم می دنبالش از این پشت به اون پشته بود اینکه از مستقرش برمهنم حضور نظر این می معمول ها رو می بینه که کیف محمود رو پیدا کرده مادر مهری شرمنده و در هم شکسته از پشت پنجره نگاهی به علی انداز. که ما که از بالای پشت بوم به پایین نگاه میکنه و بیسی میزنه. صدای رگاس. وای ناسو بکنه. هاشم محمود خونالو بود ولو شده کف یه ساختمان نیمه ساخت. علی هم شاهد مرگ محموده. خودی علی رو دور میکنه سرهمه علی خودش رو به یه که تلفن می میری کنار یه دستگاه تو ناخرسی خواب میری جون میری جون تو اگه ش می خواب خوشو برو که سرامزگاه تلفن حالا دیگه شب کاریات رو پیش مادرت به اسم من در میکنی شب کاری؟ رئیس کارگاه گوشی رو میده دستم میگه میخواد به بگه که مادر قزیار فهمیده و تلفنی به من خبر داده. دیگه هم نمیخواد برای من باهانه در بیاره. باید از بیمونی با هم کل حساب کتاب داریم بیاریم. الو. الو. بزن بیرون از اونجا. پلیس رفته در خونه دارم یا میاد سر بزن بیرون از اون کلاچ رو. رو ولو میکنه رو هوا با موتور فرار میکنه مهدی جون مهدی جون ببین اینو کیه آوردم نشین اینجا خاطر چرا مهری نگاهی به این بر اونور میندازه و میزنه بیرون از کارگاه بعد رفتن مهری پلیس سر میرسه و دوون دوون خودشو به کارگاه میرسونه قرس ماه کامله و مهری و علی کنار آتیش توی همون پتاقشون نشستن علی بیا بزنیم بریم یه جایی که هیچ کس نشسته ما که هر کاری یه بر اون درمونش گرد نه من گیرم فهمون بچه هاش جمع کنه بابا ما که نمیتونی زندگی همه رو عوض کنیم که پشه بزنیم بریم یه اشتا خوهر بردر تو احواز و که بچه ها شو جواب کرد گردت در کار نبود بردار بزرگتری نبود تو معلم یه دختر بود تو عالم نجوانی بود دیگه میخواستنش تا اینکه که نقافل آقا مرد خیلی سکرم رول مردای خونه رو واسه خوهر و مادر و بردرم بازی کنن مثل سک کار کردم تو کفتاشی تو نقاشی تو اینکه یه روز فهمیدم یه خواستگار پر و پاک و سوسش برادرم با دیدم شکرم خوهر برادرم من سیرمونی نداره بل کردیم کارتو؟ کشفه همون بود اگه تو این یکی دو سالی که اومدم تو این شهر هرچی مردی نهی کلم نامردی میدیدم اوشو داشتم برگردم هلنگوه هنگوشتن مادمو کف رفته به تو دارم میگم رنگ که دلم نمیخواد اون مچه آشخواد کنه یه شب بخششو بزر زیر بغلش از اون خواهر و بردر خوابیدش رد شو تو آخر عمرش به خاطر نامدی که در حقشون کرده نتونی سرشو بالا بگیره کجا اگه میخواد گریه کنی زار بزنی خب همین گریه کن هنی یک کار نکرده واسه من مونده علی میری کنار موترشو و بعد مکسی اونو هل میده تو برکه موتر تو آب برکه فروی <تصفيق> علی اصلهشو میذاره رو ای جواد مهری پشت فرمونه و با هم میخوان برن عروسی اپی یعنی همون پسر حاجی که با تحقیر به علی نگاه کرده شباید عروسی ها هم بری شد عروسی تموم شده باشه پس رویم دست به دستش رو میدیم زن یه بی بر میدن. سلام علیکم شب شما بالا لطفا عروس خانم در رو می‌کنه. میکنه چی بود از بود به اسم حاشمیان گفت گل فرستد حاشمیان؟ یکی پول خورد بیا فرست. آها این پسره سرای حقدبازه میخواد نیامدنشو بفهمه اینو ببینید تاجه گل‌ها و دست گل‌هایی که برای عروسیش آوردهن رد میشه و میره طرف در لباس عروس ولو شده روی میز ناهارخوری مهری پسر حاجی رو هول میده روی زمینو گل‌ها رو با حرز پرپر میکنه به سرعت شادومات این چه وضعشه چیکار داری میکنی باشه فایسا باشه بهت میگم بچو شی فایسا بری آقا بیچاره سیاسی بده مرسه دست بالا آخه پاچگلمو زایید شو ببین چه خبره تو دخالت نکن عروس خانم. با اون کاری نداشته باش با اون کاری خوب فایصه ببینم چی میخوا اینجا ببین ببینت چی می‌خوای اینجا اومدی منو بگیری چرا دور فرستاده تو تو نفله عروس خانوم امشب خیلی ناز شده بود یا لباسات خیلی بهت میومد چقدر خرج این دک رو بازد کردی؟ چقدر خرج این دک رو بازد کردی؟ کادو زیاد گرفتیاره؟ کجاست؟ مهری تیزی می کشو و می رو طرف زنه ایبی با تو دخترم خوب رو دا تو خونه فقط همینیارو درده عروض کلی جواهرات می روزه بگیم نیست بردارین گورتونه گم کن آیا رو مثل خانمت معده باشا دست گلت در نکن می توانید دستانا به سر در بی. آزرم شرط دنند دور آریا بارو پیش در ازنا بددن حلقت بده حلقش رو رای بیار علی بزن این حلقش را می گردار باشه حلقش دستش ولی یه باسه می من تو رو می کشمت بسه تو منو کشتی قبلن گرگ زده براقم براقم ماشیاتیش کن مهری جواهرات و لباس عروسو بر و فرار میکنه ابی با که توفنگ میاد سر تراس رو نشونه میگیره زنش جلوشو میگیره ابی ماشینو نشونه میده علی نفس نفس زنونو رو بی حال میرسه به ماشین علی دست رو میذاره رو شیشه ای ماشین علی خوشه علی برو خانومی برو برو برو برو برو برو کارو نکردم و میمونه یه گلوله میخوره به شیشه ای که دست علی روش مهری ah! ah! ah! محریمی رو از آینه علی رو میبینه که داره جون میده مهری پیچه و تصویر علی از آینه گم میشه سهر شده از پشت شمشت ها جواد با یه دست زخمی خودشو میندازه تو جاده مهری کنار پاسخ تنهایی علی با لباس عروسی به دست به برکیس ایستاده مهری توی اتاق بازجویی او داره اعتراف میکنه دلم بره محمود میسوخ ولی علی علی رو دوست داشتم وقتی با هم بودیم احساسا قدرت میکردم بابام یه عمر روی تاکسی بقیه جون آخرشم توی تصادف کشته شد و یارو فرار کرد رفت از اون موقع من دارم سگ دو میزنم مادرم به خاطر اعتقادتی که داشت نمیزاش دستا پاخت بکنم ولی من یه فرصت تلاییی گیرم اومده بود که نمیخواستم هیچ جوی دستش بدم چی خیلی ساده شروع شد خیلی احمقانه اصلا فکر آقابتوشو نمی کرد محری مشغول نوشتنه چجوری میشه شه باقی به روزی که رفتم پشت بوم تا موچه رو برای دوزیش از ناقلی خام بگیرم وقتی کار از کار میگذره دیگه نمیتونی تونی کنی فقط یه راه داری روزی هزار بار با خودت مرورش کنی شاید بهانه برای درست بودن کار پیدا کنی و طلای اون از چیکار کردی؟ مدعی شدن که نسبشون رو برنگردوندی. ریختنشون دور. آدرس خونه اون پسر بچه چیه؟ فقط علی خونه شون میگه. اون میگفت خدا به هر کسی این فرصت و رو نمیده که بتونه در حق دیگه کسی بکنه. این اشتباه ما از همینجا شروع شد. از اینکه وابسته شدیم این, شد این فرصت رو به زور از خدا بگیر. پسر که آشغال کن زیر بارون داره تو آشغالا رو میگرده. چند تا بطری پلاستیکی رو میذاره توکی یهو یه هوی نایلون پیدا میکنه پر جواهر که یه نامم کنارشه نامر رو میخونه تلا جواهراتو رو میذاره توکی سر به زیر بارون مید و فرار میکنه این رادیو فیلمم به آخرش رسید امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید رادیو فیلم ندارها با تلاش این دوستان تقدیم حضورتون شد سردبیرو تحقیق کننده فرشاد آزرنیان. صدابردار بردار علی حاجی نوروزی و من آرمان قفاریان نویسنده و راوی این برنامه بودم تا رادیو فیلم دیگه خدا نگهدارتون.